کتابدار ماهی کتاب داره تیزبین دوباره پشت میز شطرنجش نشسته بود و وقتی نورا سر رسید توجه چندانی به او نکرده. خب این یکی هم مزخرف بود. خانم علم لبخندی شیطنت ها میزد. واقعا به آدم حالی میکنه نه؟ چی رو ؟ خب اینکه میتونی درباره انتخاب ها تصمیم بگیری، اما درباره نتایجشون نتایجشون نه؟ البته هنوز هم پای حرفی که زدم هستم، انتخاب خوبی بود، فقط نتیجه مطلوبی نداشت. نورا به چهره خانم علم خیره شد. دشت از این اتفاقها لزت می برد. نورا پرسید، چرا همونجا موندم؟ چرا بعد از فهمیدن درباره مرگ ایزی سری بر نگشتم خانم علم شانه بالا انداخت، گیر افتادی. قمزده و افسرده بودی میدونی که افسردگی چطوریه نورا این اتفاق را درک میکرد یاد تحقیقی درباره ماهی ها افتاد که جایی خانده بود ماهی ها خیلی بیشتر از آنچه مردم فکر میکنند به انسانها شبیهند ماهی ها هم افسرده میشوند در تحقیقات روی گور خرماهی با ماژیک خطی افقی دور تا دور وسط تنگ ماهی کشیدند ماهی های افسرده زیر خط می ماندند. اما با دادن کمی پروزاک به همان ماهی ها از خط عبور میکردند و بالا میرفتند تا به بالای تنگ میرسیدند و با شور و حیجان این سو و آنسو می رفتند. ماهی ها وقتی هیچ دلیل یا انگیزه ای نداشته باشند افسرده میشوند. یعنی وقتی که همانطور توی تنگی معمولی معلق باشند که هیچ شباهتی به هیچ چیز خاصی ندارد. شاید بعد از مرگ ایزی، استرالیا برای نورا همان تنگ ماهی خالی بود. شاید هیچ دلیلی نداشت که به بالای خط شنا کند. شاید حتی پروزاک هم برای روحی بخشیدن به او به اندازه کافی قوی نبود. بنابراین خیلی ساده، قصد داشت با جوجو توی همان آپارتمان زندگی کند و هیچ حرکت خاصی انجام ندهد تا وقتی که مجبورش کنند کشور را ترک کند. شاید حتی خودکشی هم برایش کار زیادی محسوب می شده. شاید در بعضی زندگی ها آدم همانطور بی هدف سر جایش معلق می ماند و هیچ انتظاری ندارد و حتی سعی نکند عوض شود. شاید بیشتر زندگی ها همینطور باشند. هر انجام به حرف آمد. آره شاید گیر افتادم شاید توی همه زندگی ها گیر می افتم. منظورم اینه که شاید اصلا من اینطوریم. یه ستاره دریایی توی همه ی زندگیهاش ستاره دریاییه امکان نداره توی یه زندگی یه ستاره دریایی پروفسور مهندسی هوا فضا بشه بنابراین شاید اصلا زندگی وجود نداره که من توش گیر نیفتاده باشم خوب به نظر من اشتباه میکنی خیلی خوب پس میخوام زندگی رو تجربه کنم که توش گیر نیفتادم میشه کدوم زندگی؟ اینو خودت نباید به من بگی؟ خانم علم وزیرش را حرکت داد تا مهره سربازی را بزند سپس صفحه شطرنج را چرخاند. متاسفانه من فقط یک کتاب دارم کتاب دارم اطلاعات دارند میتونن آدمو به طرفی کتابهای درست و زندگیهای درست هدایت کنن بهترین جاها رو پیدا میکنن مثل موتورهای رسجویی که روح داشته باشن دقیقاً اما تو هم باید بدونی چی دوست داری باید بدونی که چی رو توی موتور جستجوی فرضی بنویسی. بعضی وقتا باید چند بار امتحان کنی تا نتیجه دلخواهت رو به دست بیاری. طاقتش رو ندارم. فکر نکنم بتونم این کارا رو بکنم. تنها راه یاد گرفتن، زندگی کردنه. آره، تا حالا چند بار همینو رو نورا نفس پرسدایی بیرون داد. جالب بود که می توانست در این کتابخانه بازدمش را بیرون بدهد. بدنش را کاملا حس می‌کرد انگار همه چیز طبیعی بود چون این کتابخانه به هیچ وجه طبیعی نبود نورای واقعی و فیزیکی همینجا حضور نداشت اصلا اینجا بودنش غیر ممکن بود با این حال تا آنجا که نورا درک می‌کرد واقعا همینجا بود چون در هر صورت انگار که جاذبه هنوز وجود داشته باشد به دلیلی در کتابخانه روی زمین ایستاده بود نورا گفت خیلی خوب دوست دارم زندگی رو تجربه کنم که توش موفقم. خانم علم با رضایتی نچ کرد. به عنوان کسی که کتاب زیادی خونده اصلا توی انتخاب کلمات دقت نمی کنی. ببخشید؟ موفقیت این واسه چه محنایی داره؟ پول؟ نه خوب شاید اما مشخصی که بارزش نیست. خب پس موفقیت چیه؟ لورا اصلا نمیدانست موفقیت در نظرش چیست. مدت خیلی زیادی بود که احساس می‌کرد آدم شکست خورده و ناموفقی است. خانم علم صبورانه لبخند زد. میخوای دوباره نگاهی به کتاب حسرت‌ها بندازی؟ میخوای کمی درباره هایی فکر کنی که تو رو از اون چیزی که به نظرت موفقیت دور کردن؟ نورا سری مثل سگی که میخواهد آب را از خود بتکاند، سرتکان داد. نمیخواست دوباره با فهرست پایاناض پذیر اشتباهاتش روبرو بشود. خودش به اندازه کافی افسرده بود، به علاوه حسرت‌هایش را میدانست. حسرت که آدم را ترک نمی کند. مثل نیش پشه‌کوره که نیست، تا عبد می‌خورد. خانم علم که ذهنش را خوانده بود گفت: نه. تا عبد نمی‌خوره. دیگه از رفتارات با گربت پشیمون نیستی. از اینکه با ایزی نرفتی استرالیا هم پشیمون نیستی لورا با سر تایید کرد خانم علم درست می گفت یاد شنا کردن در استخر ساحل برونته افتاد به طرزی عجیب برایش آشنا بود و حس خوبی داشت خانم علم گفت از کودکی تشویقت می کردن که شنا کنی آره بابا تمیشه با خوشحالی می استخ نورا متفکرانه گفت، یکی از معدود چیزهایی بود که خوشحالیش میکرد. نورا شنا کردن را با تایید پدرش یکی میدانست. همچنین از سکوتی که هنگام حضور در آب ایجاد میشد، خوشش میآمد، چون دقیقاً نقطه مخالف داد و بیداد پدر و مادرش سر هم دیگر بود. خانم علم پرسید، چرا کنارش گذاشتی؟ به محصه اینکه چند تا مسابقه رو بردم، انگار یه دفعه دیده شدم، نمیخواستم دیده بشم، اون هم ندیده شدن عادی، بلکه دیده شدن توی لباس شنا، توی سنی که آدم شدیدن از بدنش خجالت میکشه یه نفر گفت هم شوناها مثل شوناهای پسهره حرف مسخره‌ای بود، اما خب، از این حرف‌های مسخره زیاد بود و توی اون سن برای آدم خیلی مهمه توی دوران نوجوانی ترجیح میدادم دادم کاملا نامرعی بشم. همه صدا میکردن ماهی. البته نه اینکه این ازم تعریف کنن. خجلتی بودم. کتاب خونه رو به حیات بازی ترجیح بدم همین بود. به نظر میاد موضوع کوچیکی باشه اما داشتن اون فضای شخصی کوچیک واقعا کمکم می کرد. خانم علم گفت. هرگز اهمیت بالای چیزهای کوچیک رو دست کم نگیر. باید همیشه این رو به خاطر داشته باشی نورا به گذشته فکر کرد ترکیب خجالتی بودن و دیده شدن برای هر نوجوانی میتوانست ترکیب مشکل سازی باشد اما نورا هیچ وقت به این خاطر مورد آزار و اذیت بقیه بچه‌ها قرار نگرفت احتمالاً به خاطر اینکه همه برادرش را میشناختند جو هم با اینکه چندان هیکلی یا خشن نبود، همیشه به اندازهای جذاب و محبوب محسوب میشد که خانواده درجه یکش را از شرارت‌های حیات مدرسه دور نگه دارد. نورا در مسابقات محلی و بعد مسابقات ملی پیروز شد. اما وقتی به پانزده سالگی رسید، تحمل این همه توجه و شنای روزانه و دور زدن دوباره و دوباره در استخر برایش سخت شد. مجبور شدم کنارش بذارم خانم علم با سر تایید کرد. ارتباطی هم که با پدرت ایجاد کرده بودی ضعیف شد و حتی تا مرز قد شدن پیش رفت. آره. صورت پدرش را در آن صبح یک شنبه بارانی به یاد آورد که جلوی مرکز تفریحات بدفورد با هم توی ماشین نشسته بودند. نورا به او گفت دیگر نمیخواهد در مسابقات شنا شرکت کند و آن نگاه ناامید و عمیقاً دلسرد پدرش گفته بود، اما اینطوری میتونی زندگی موفقی داشته باشی. بله، حالا نورا یادش میامد. هیچ وقت نمیتونی ستاره موسیقی بشی، ولی این یه هدف واقعیه، درست جلوی چشماته. اگه به تمرین کردن ادامه بدی، میتونی توی المپیک شرکت کنی، از این بابت مطمئنم. به خاطر این حرف پدرش با اون لج شده بود. انگار که داشتن زندگی شاد فقط مسیری باریک و مشخص داشت و آن مسیر را هم پدرش برایش انتخاب میکرد. انگار که عقل و منطق خود نورا برای تصمیم گیری در زندگی به دردش نمیخورد. اما چیزی که نورا در پانزده سالگی توجهی به آن نمیکرد، این حقیقت بود که حسرت در آینده چه حسی خواهد داشت و پدرش چقدر زجر کشیده بود از درک اینکه هرگز به رویایی که در سر داشت نخواهد رسید. حقیقت داشت که پدر نورا سخت گیر بود. به تمام کارها و خواسته ها و باورهای نورا که ارتباطی به شنا نداشتند ایراد می گرفت. علاوه بر این نورا حس می کرد با حضور در جایی که او هست انگار جرمی ناشناخته مرتکب شده. پدرش از همان وقتی که ربات پایش آسیب دید و دیگر نتوانست راگبی را دنبال کند، همیشه بر این باور بود که دنیا علیه اوست. نورا هم بخشی از همان نقشه دنیا بود، دسته هم خود نورا که اینطور حس می کرد. از همان لحظه گفتگویشان در پارکینگ، نورا حس کرده بود که در واقع فقط ادامهی بر درد زانوی چپ پدرش است. مثل زخمی که در کالبد انسان جلوی چشمانش راه برود. اما شاید پدرش می دانست چه اتفاقی خواهد افتاد. شاید پیش بینی کرده بود که چطور یک حسرت به حسرت بعدی ختم شود. تا جایی که تنها حس باقی مانده حسرت است. کتابی پر از حسرت. خیلی خوب خانم علم میخوام بدونم توی اون زندگی که هر کاری پدرم می گفت می کردم چی شده. اون جایی که تا جایی ممکن تمرین می کردم. ونجایی که هیچ وقت از بیدار شدن ساعت پنج صبح و خوابیدن ساعت نه شب گله نمیکردم اونجایی که هر روز شنا میکردم و هیچ وقت کوتاه نمی اومدم جایی که همه چیزم رو برای شنای آزاد فدا کردم جایی که ناامید نشدم جایی که هر کاری لازم بود کردم تا به المپیک برسم منو ببرین توی اون زندگی تا چند لحظه بعد به نظر میرسید خانم علم اصلا متوجه سخنرانی کوتاه نوران نشده و همانطور به صفحه شطرنجش خیره مانده و به این فکر می کرد که چطور خودش را شکست بدهد گفت مهره محبوب من رخه همون مهره که همه فکر میکنن لازم نیست مراقبش باشن خیلی صاف و صادقه آدم حواسش رو جمع وزیر و اسب و فیل میکنه چون حرکت های مخفی و جالب میکنن اما معمولا این رخه که قافل گیرت میکنه اونی که صاف و صادقه، هیچ وقت دقیقاً چیزی نیست که نشون میده. نورا متوجه شد که خانم علم احتمالاً فقط درباره شطرنج حرف نمیزند. با این حال، قفصه های کتاب با سرعتی مثل پیشروی قطار به حرکت درآمده بودند. خانم علم توضیح داد زندگی که درخواستش رو کردی کمی دورتر از زندگی رویای میخونه و ماجراجویی استرالیاست. اونها به هم نزدیکتر بودن. این یکی به انتخابهای متفاوت زیادی احتیاج داره. و باید بیشتر در زمان به عقب بریم. به همین خاطر کتابش دورتره. متوجه میشی؟ آره، کتابخونه ها باید سیستم چینش خوبی داشته باشن. سرعت کتاب ها کم شد. آها، این هاش، این بار خانم علم بلند نشد. فقط دست چپش را بلند کرد و کتابی در هوا به سمت نورا پرواز کرد. چطوری این کارو کردین؟ نمیدونم. اینم زندگیی که میخواستی دیگه میتونی بری. نورا کتاب را گرفت. سبک جدید و به رنگ لیمویی بود. صفحه اول را باز کرد. این بار هم متوجه شد که عملا هیچ چیز احساس نمیکند. یادداشت یکی مانده به آخری که نورا پیش از گیر افتادن میان مرگ و زندگی نوشته بود دلم برای گربم تنگ شده. خستم. زندگی موفق خوابیده بود. پوچی امیق و بیروعیاب. حالا هم به لطف زنگ گوشیش بیدار شده بود و نمیدانست کجاست. گوشیش میگفت ساعت شش و سی دقیقه صبح است. به لطف روشنایی صفحه نمایش کلید لامپ کنار تخت را هم دید. روشنش کرد و متوجه شد توی اتاق هتل است ساده و آبی رنگ بود و مثل دفاتر کاری توی شرکت های بزرگ شیک و لوکس به نظر می رسید تقریباً تقریبا آبستری به سبک سزان از یک سیب یا شاید هم گلابی که با خوش بسیار کشیده شده بود درون قابی روی دیوار آویزان بود یک لیوان شیشه‌ای ای اصفانهی شکل نیمه خالی آب مدنی کلار تخت بود و چند بسته بیسکویت ترد باز نشده. چند کاغذ پرین شده هم روی میز بود که به هم منگنه شده بودند. یک جور جدول زمانی بود. لورا به آن نگاه کرد. مرمه روزانه برای نوراسید افسر والا مقام امپراتوری بریتانیا سخنگوی مهمان کنفرانس بحاره الهام بخش موفقیت مؤسسه تحقیقاتی گالیویر. و پنج دقیقه صبح ملاقات با پرییا ناولوری مؤسسه تحقیقاتی گالیور و روری لانگفورد، سخنرانان مشهور و جی در لابی هتل میانه قاره ای صبح مرسی صدا 9:05 دقیقه صبح مرور دستگاه ها 9:30 دقیقه صبح نورا در اتاق وی‌آی‌پی منتظر میماند و سخنگوی اول را در تالار اصلی تماشا می کند. جی پی بلایس مختره و سازنده نرمافزار نرمفصار می تایم و نویسنده یک کتاب زندگی تو قانون تو. ده و پانزده دقیقه صبح. نورا سخن رانی می کند. ده و چهل و پنج دقیقه صبح. پرسش و پاسخ با تماشا چیان؟ یازده صبح. دیدار و گفت و گو. یازده و سی دقیقه صبح. پایان. نوراسید افسر والا مقام امپراتوری بریتانیا الهام بخش موفقیت پس واقعا زندگی بود که نورا در آن به موفقیت رسیده باشد خب همین هم خیلی خوب بود اندکی به این فکر کرد که جی و بقیه کسانی که باید در لابی هتل ملاقاتشان کند چه کسانی هستند سپس کاغذ را روی میز گذاشت و از تخت بیرون آمد زمان زیادی داشت چرا ساعت شش و سی دقیقه صبح بیدار شده بود؟ شاید هر روز صبح شنا می کرد. این منطقی بود. دکمه ای را فشار داد. پرده ها با صدای آرامی کنار رفتند تا منظری رودخانه و آسمان خراش ها و گنبد سفید ورزشگاه ادوارنا نمایان بشود. پیش از این هرگز این منظره ویژه را از این زاویه بخصوص ندیده بود. لندن کنری ورف حدوداً 20 طبقه بالاتر از سطح زمین. وارد سرویس بهداشتی شد. کاشی های نخودی رنگ، محوطه دوش بزرگ و حوله سفید کلوفت و نرم. متوجه شد برخلاف روزهای دیگری که صبح زود بیدار می حس بدی ندارد. نصف دیوار روبرو با آینه پوشیده شده بود. نورا با دیدن خودش در آن نفسی عمیق کشید. بعد هم زد زیر خنده. به طرز خندهداری سر حال و سلامت و همچنین قوی به نظر می رسید در این زندگی هم سلیقه بسیار بدی در انتخاب لباس خواب داشت پیجامه چهارخانه به رنگهای خردلی و سبز بتند داشت سرویس بهتاشتی نسبتاً بزرگ بود به اندازه بزرگ که نورا کفش دراز کشید و چند حرکت شنا زد ده شنای متوالی بدون اینکه زانویش را زمین بگذارد و حتی نفسش هم به شماره نیفتاد بعد در حال پلانک قرار گرفت، سعی کرد با یک دست در این حالت بماند، بعد دستش را عوض کرد، باز هم بازوهایش به لرزه نیفتادند، سپس تمرینه برپی کرد، حتی زرهی برایش سخت نبود. وای، بلند شد و با کف دست روی شکمش زد که به سختی سنگ بود، یاد همین دیروز در زندگی اصلیش افتاد که با قدم زدن در خیابان هم نفسش بند میامد. از دوران نوجوانی به بعد اینقدر احساس سلامت نکرده بود. در واقع به نظرش میآمد در آن لحظه از هر زمان دیگری در عمرش بدن آماده تر و مشخصاً قدرتمندتری داشت. در فیسبوک، اسم ایزابل هرش را جستجو کرد و فهمید که دوست سابقش زنده است و هنوز در استرالیا زندگی می کند. این موضوع را خوشحال کرد. برایش مهم نبود که حتی در شبکه های اجتماعی هم دوست نبودند، چون به احتمال زیاد نورا در این زندگی به دانشگاه بریستول نرفته بود حتی اگر هم رفته بود در آن رشته درس نمیخواند. دانستن این که هرش با اینکه هرگز نورا سید ندیده هنوز هم همان کارهایی را میکند که در زندگی اصلی نورا انجام میداد باعث شد کمی احساس کوچکی کند همچنین نام دن را جستجو کرد. گویا با مربی دو سواری ثابتی به اسم جینا ازدواج کرده بود و زندگی شادی را میگذراند. گذراند. کم در ظاهر. جینا لورد با نام خانوادگی پدری شارپ در سیسیلی براس محروسیشان را گرفته بودند. پس از آن اسم نوراسید را گوگل کرد. در صفحه ویکیپیدیایش. بله، صفحه ویکیپدیا داشت. نوشته بود که در اولمپیک شرکت کرده آن هم دو بار و اینکه تخصصش در شنایی آزاد بود. مدال تلای شنایی آزاد 800 متر را با زمان 8 دقیقه و 5 ثانیه برده بود و نیز مدال نقره 400 متر را داشت. این اتفاقها متعلق به 22 سالگیش بود. یک مدال نقره دیگر را هم در 26 سالگی و برای شرکت در مسابقه شنایی امدادی 400 متر برنده شده بود. بعد اوزا انگار از قبل هم مزخره تر شد، چون در مقاله خواند که مدتی رکورددار شنای آزاد 400 متر زنان در مسابقات آبی جهان بوده. اما حالا دیگر از مسابقات بین المللی بازنشسته شده است. در 28 سالگی بازنشسته شده بود. ظاهراً حالا در بخش پوشش مسابقات شنا برای بی بی سی کار می کند. در برنامه تلویزیونی پرسش ورزشی شرکت کرده، زندگی نامش را به اسم شنا کن یا قرق چاپ کرده و گهگاهی به عنوان کمک مربی در ارگان دولتی شنای بریتانیا کار می کند. با وجود تمام این کارها هنوز هم روزانه دو ساعت شنا می کند. پول زیادی به معسیسه های خیریه مانند معسیسه درمان دربان سرطان ماریکوری اهدا کرده. همچنین مسابقات شنایی در اطراف اسکله برایتون ترتیب داده که در آمدش به جامعه ی حفاظت از زیست دریایی اهدا می شود از زمان بازنشستگی تا به حال دوبار ارز کانال انگلیس را شنا کرده است. پیوندی در صفحه ویکی بود که به سخنرانی تد ختم میشد و نورا در آن درباره ارزش استقامت در ورزش تمرین و زندگی صحبت کرده بود. فیلم سخنرانی بیش از یک میلیون بار دیده شده بود. نورا شروع به تماشای فیلم کرد و بیدرنگ این حس به او دست داد که دارد کسی دیگر را تماشا می کند. این زن اعتماد به نفس داشت. خیلی خوبی استاده بود. مخاطبان را درگیر صحبتهایش می کرده. حین حرف زدن کاملا طبیعی لبخند می‌زد و هر بار هم موفق می‌شد در تمام زمانهای مد نظرش لبخند و خنده را به لب تماشاچیان بیاورد و کاری کند که برایش دست بزنند یا سری به تایید تکان دهند نورا هرگز تصور نمی‌کرد زمانی بتواند این چنین باشد برای همین هم سعی کرد کارهای این یکی نورا را حفظ کند و به خاطر بسپارد اما خیلی زود دریافت که امکان ندارد در این کار شود. نورا در فیلم داشت میگفت آدمهای با استقامت نسبت به بقیه تفاوت ذاتی خاصی ندارن. تنها تفاوتشون اینه که هدف مشخصی توی ذهنشون دارن و میخوان که به اون هدف برسن. توی دنیایی که سرتا سر پر شده از عوامل حواس داشتن استقامت ضروریه. این توانایی باعث میشه وقتی بدن و ذهنت به منتهای تحملشون رسیدن، طاقت بیاری. سرت رو پایین بندازی و توی خط خودت شنا کنی بدون اینکه اطرافت رو نگاه کنی و نگران این باشی که چه کسی ممکنه ازت جلو بزنه این زن اصلا چه کسی بود نورا فیلم را اندکی جلو زد و به جایی رسید که این نورای متفاوت هنوز داشت با اعتماد به نفسی در خور ژاندارکی خود ساخته حرف میزد. اگه هدفت رسیدن به چیزی باشه که با ذاتت در تزاده همیشه شکست میخوری هدفت باید این باشه که خودت باشی که مثل خودت رفتار کنی و به نظر برسی و فکر کنی که حقیقی ترین نسخه خودت باشی از خودت بودن استقبال کنی تشویقش کنی دوستش داشته باشی برای رسیدن بهش سخت تلاش کنی وقتی هم کسی مسخرش میکنه یا بهش دهنگ کجی میکنه محل نذاری شایعات بیشترشون در واقع حسادتا و فقط ظاهرشون رو تغییر دادن سرتو بندس پایین استقامت تو حفظ کن به شنا کردن ادامه بده. نورا حرف خودش را زیر لب تکرار کرد. به شنا کردن ادامه بده. و به این فکر افتاد که هتل هم استخر دارد یا نه. فیلم قطع شد و یک ثانیه بعد گوشی نورا شروع به لرزیدن کرد. اسمی روی صفحهش پدیدار شد. نادیا. در زندگی اصلیش هیچ نادیایی نمی‌شناخت. نمیدانست دیدن این اسم باید موجب حس شدید انتظار در این نورا شود. یا قمی فضاینده فقط یک راه برای فهمیدنش وجود داشت بله صدایی ناشنا گفت عزیزم صدایش برای نورا مهربان بود اما گرمای چندانی نداشت لهجه هم داشت شاید لحجه روسی امیدوارم خوب باشی سلام سلام نادیا ممنونم خوبم توی هتلم دارم واسه کنفرانس آماده میشم سعی کرد سرخوش به نظر برسد. آهان آره کنفرانس پونزده هزار پوند واسه یه سخنرانی خیلی خوب به نظر میاد. مسخره به نظر میامد. اما همچنین این فکر به سر نورا افتاد که نادیا حالا هر کسی که بود چطور از این حقیقت خبر داشت. آره جو بهمون به گفت. جو؟ آره خوب حالا گوش کن بالاخره یه موقع باید راجع به تولود پدرت باها حرف بزنم چی؟ میدونم که اگه بتونی بیای اینجا و یه سر بهمون به بزنی خیلی خوشحال میشه تمام بدن نورا سرد شد کرد گرد گار که روح دیده باشد یاد مراسم خاکسپاری پدرش افتاد که در آن برادرش را بغل کرده بود و روی شانه های همدیگر گریه می کردند. بابام؟ بابایی که مرده، همین الان هست دیگه حیات اومد داخل، میخوایی باش حرف بزنی؟ این حرفش بسیار توجه هنگیز و نیز ویرانگر بود، اما اصلا با لحن کلامش همخانی نداشت. آنقدر ساده و معمولی این حرف را به زبان آورده بود که انگار اصلا اهمیتی نداشت. چی؟ با بابا بابات حرف بزنی؟ لحظه ای طول کشید تا نورا به خودش بیاید. اسمی کرد دست و پایش را گم کرده من من به زحمت می توانست حرف بزند یا حتی نفس بکشد نمیدانست چه بگوید همه چیز در نظرش غیر واقعی بود انگار در زمان سفر کرده بود انگار دو دهه به گذشته برگشته بود جواب دادنش بیشتر از آنچه باید طول کشید چون ناگهان صدای نادیا را شنید که می میگفت اینهاش دوران نزدیک بود تلفن را قطع کرد شاید باید همین کار را هم میکرد، اما نکرد. حالا که میدانست این هم یکی از احتمالات است، باید دوباره صدای او را میشنید. اول، صدای نفسش. پس از آن، سلام نورا، چطوری؟ همین، همینقدر ساده و معمولی و روزمره خودش بود، صدایش، صدای قدرتمندش که همیشه قاطع بود. اما شاید حالا کمی نازکتر و ضعیفتر به گوش میرسید. صدایی 15 سال پیرتر از آنچه نورا به خاطر داشت. نورا با صدای نجواگون و شگفت زده گفت: بابا، خودتی؟ حالت خوبه نورا؟ خطت مشکل داره؟ می تماس تصویری بگیریم؟ تماس تصویری برای دیدن صورتش؟ نه. این یکی دیگر تحملش سخت بود. تا همینجا هم تحملش سخت بود. اینکه که بدارد پدرش در دورانی بعد از اختراع تماس تصویری هنوز زنده است. پدرش مال دوران تلفن‌های خطی و خانگی بود. وقتی مرد تازه داشت با چیزهای تازه و بنیاد ای همچون ایمیل و پیامک خو می گرفت. نورا گفت: نه نه مشکلی نیست فقط توی فکر بودم یکم خستم، ببخشید حالیت چطوره خوبم دیروز سالی رو بردیم دامپزشکی نورا حدس میزد سالی سگ باشد پدر و مادرش هرگز سگ یا هیچ حیوان خانگی دیگری نداشتند در دوران کودکی، بارها التماس کرده بود که سگ یا گربه برایش بگیرند اما پدرش همیشه می گفت، حیوان خانگی آدم را مقید می کند نورا در حالی که سعی می کرد طبیعی رفتار کند گفت چه شده بود؟ دوباره گوشاش مشکل پیدا کرده عفونتش هر سری بر می گرده نورا انگار که سالی و گوشهای مشکل دارش را می شناسد گفت آهان آره سالیه بیچاره بابا من من, من دوست دارم فقط میخوام، فقط میخوام بگم که حالت خوبه نورا به نظر میاد کم احساساتی شدی فقط حس کردم که قبلا به اندازه کافی بهت نگفته بودم که دوست دارم میخوام اینو بدونی تو پدر خوبی هستی توی یه زندگی دیگه، مثلا زندگی که تو شنار و کنار گذاشته باشم، حسابی پشیمونم که بهت نگفتم دوست دارم. نورا؟ از اینکه سوالی از پدرش بپرسد، حس عجیبی داشت. اما در هر صورت باید میفهمید. سؤالها یکی پس از دیگری میخواستند، از دهانش بیرون بپرند. حالت خوبه بابا؟ چرا نباشم؟ فقط خب میدونی که قدیما, قدیما میگفتی قفصی سینت درد میکنه از وقتی دوباره سالم و سرحال شدم دیگه دردی ندارم مال خیلی سال پیشه باید یادت باشه که همون وقتی رو میگم که تصمیم گرفتم دوباره سالم زندگی کنم گشتن با اولمپیکی ها باعث این تغییرات هم میشه دوباره برگشتم به همون هیکل دوران راکبی بازی کردنم نزدیک شونزده سالم هست که نوشیدنی الکلی نخوردم دکتر میگه کلسترول و فشار خونم پایینه آره البته یادمه که تصمیم گرفتی سالم زندگی کنی بعد سوال دیگری به ذهن نورا رسید اما اصلا نمیدانست چطور باید آن را بپرسد بنابراین تصمیم گرفت صاف و پوستکنده بپرسد راستی چند وقته با نادیایی؟ مشکل حافظه پیدا کردی؟ نه خب آره شاید این اواخر خیلی درباره زندگی فکر میکنم. اکان فیلسوف شدی؟ خب بالاخره درسشو خوندم. که؟ مهم نیست فقط یادم نمیاد تو و نادیا چطور با آشنا ناشدیم؟ صدای آهی معذب را از سمت دیگر تلفن شنید. لحن پدرش خوشگ و خشن بود. خودت که میدونی چطور با هم آشنا شدیم. دیگه واسه چی میپرسی؟ روانشناست گفته در این باره حرف بزنی چون حس منو راجع به این موضوع میدونی. روانشناس دارم. ببخشید بابا. اشکالی نداره. فقط میخوام مطمئن بشم که شادی. معلومه که شادم. دخترم قهرمان المپیک و بالاخره عشق زندگیمو پیدا کردم. تو هم دوباره روی پای خود ایستادی. منظورم از نظر ذهنیه. بعد از اتفاقی که توی پرتقال افتاد لورا میخواست بداند در پرتقال چه اتفاقی افتاده اما سوال دیگری هم داشت که باید اول میپرسید مامان چی؟ اون عشق نبود؟ یه دورانی چرا؟ اما همه چیز عوض میشه نورا بیخیال تو دیگه بزرگ شدی من؟ من؟ لورا تماس را روی بلندگو گذاشت با کلیکی دوباره به صفحه ویکیپیدیای خودش برگشت و بله، نوشته بود پدرش با نادیا وینکو، مادر شناگری اوکراینی به نام ایگور وینکو به مادر نورا خیانت میکند و بعد پدر و مادرش از هم طلاق میگیرند. در این زندگی، مادر نورا خیلی وقت پیش در سال 2011 فوت کرده بود. همه اینها دلیلش آن بود که نورا هیچ وقت توی پارکینگی در بدفورد کنار پدرش ننشسته و به او نگفته بود که دیگر قصد ندارد در مسابقات شنا شرکت کند. دوباره همان حس به او دست داد که انگار داشت محو میشد و انگار فهمیده بود این زندگی هم به دردش نمیخورد. خورد. داشت به کتابخانه برمیگشت اما سر جایش ماند. با پدرش خودحافظی کرد. تماس تلفنیشان را قطع کرد و به مطالعه درباره خودش ادامه داد. مجرد بود، اما به مدت سه سال با شیرجهزن مدالاور آمریکایی المپیک به نام اسکات ریچاردز رابطه‌ای عاطفی داشت و حتی مدتی کوتاه با او در کالیفرنیا زندگی کرده بود. خانهشان در لاهویا سندیگو بود. نورا حالا در غرب لندن زندگی می‌کند. وقتی تمام صفحه را خواند گوشیش را زمین گذاشت و تصمیم گرفت ببیند استخری پیدا میکند یا نه میخواست همان کاری را بکند که در این زندگی باید انجام میداد که آن هم شلا کردن بود شاید هم آب کمکش میکرد بفهمد باید چه بگوید از شرایش به شدت لذت برد هرچند که فکر خلاقانه خاصی به ذهنش الهام نشد دست نگرانی و استرابی که از گفتگو با پدر مردهش در او به وجود آمده بود، با شنا از بین رفت. خودش تنها در استخر بود و بدون ای فکر کردن، بارها و بارها پشت سر هم طول استخر را با شنای قرباقه طی کرد. قدرت بدنی و تسلطی که در شنا داشت، آنقدر برایش لذت بخش بود که تا مدتی تمام نگرانی هایش را درباره پدرش و سخنرانی که اصلا برایش آماده نبود کنار گذاشت. اما در حالی که شنا میکرد کرد، کم کم حال و هوایش عوض شد. به تمام سالهایی فکر کرد که به عمر پدرش اضافه و از عمر مادرش کاسته شده بود. هرچه بیشتر فکر میکرد از دست پدرش عصبانی و عصبانیتر میشد و این خشم باعث میشد سریعتر شناک کند. همیشه فکر میکرد پدر و مادرش مغرورتر از آن هستند که طلاق بگیرند. در عوض برای همین میگذارند تنفرشان از همدیگر در دلشان روشت کند و بعد آن را سر بچه هایشان و مخصوصا نورا خالی میکنند. شنا هم تنها راه نورا برای کسب رضایت از پدر و مادرش بود. در این زندگی نورا روابطش علاقهش به موسیقی و هر رؤیای دیگری را که به مدال ختم نمیشد فدا کرده بود. زندگیش را فدا کرده بود تا فقط پدرش را خوشحال نگه دارد. پدرش هم با خیانت با زنی به اسم نادیا و بعد طلاق از مادرش پاداش این فداکاری نورا را داده بود. و حالا بعد از تمام این کارها به خودش اجازه میداد که با نورا خوشک و خشن صحبت کند. گور پدرش، دستی کم در این زندگی گور پدرش در حالی که به شنای آزاد تغییر حالت میداد متوجه شد تقصیر او نیست که پدر و مادرش هرگز نتوانسته بودند آنطور که از آنها انتظار میرفت بی غید و شرط همدیگر را دوست داشته باشند. تقصیر او نیست که مادرش همیشه تک تک عیب های او را به یادش میآورد. اول از همه هم نامتقارن بودن گوشهایش را. نه، مشکل مال قبلتر از آن بود. نخستید بشکل از آنجا شروع می که نورا به طریقی به خودش جرأت داده بود وقتی ازدواج پدر و مادرش آنقدر سست و متزلزل است پا به جهان بگذارد. بعد هم مادرش افسردگی گرفت و پدرش به نوشیدنی های روی رویاورد. سی بار دیگر طول طی کرد. کم کم ذهنش آرام شد و حس آزادی به او دست داد. فقط خودش بود و آه. اما وقتی سرانجام از استخر بیرون آمد و به اتاقش برگشت، تنها لباس تمیز توی اتاق هتل را به تن کرد، یک دست کت و شلوار زنانه شیک و به محتویات چمدانش خیره شد. می توانست حس تنهایی محض را از سویشان احساس کند. نسخه ای از کتاب خودش هم توی چمدان بود. با چشمانی پولادین و پر اراده از روی جلد به او خیره شده بود. لباس شنای تیم بریتانیای کبیر را داشت. کتاب را برداشت و متوجه شد با خطی ریز روی جلد نوشته که این کتاب با همکاری آماندا سانز نوشته شده است در اینترنت جستجویی کرد و فهمید آماندا سانز نویسنده اصلی کتاب شمار زیادی از مشاهیر ورزشی است سپس نگاهی به ساعتش انداخت وقتش بود که به لاویه هتل برود پیش رویش دو نفر شیک‌پوش ایستاده بودند که نورا نمیشناختشان و یک نفر دیگر که کاملا میشناختش کده شلوار بتن داشت و در این زندگی صورتش را کاملا اصلاح میکرد. موهایش را خیلی رسمی فرق کنار باز کرده اما خود جو بود. ابروهایش هم مثل همیشه پرپشت بودند. مادرشان همیشه میگفت این ابروها نشون میدن ژن ایتالیایی داری. جو؟ از آن مهمتر این که جو به او لبخند میزد. لبخندی پت و پهن و برادرانه و بیتکنلوف. جو گفت صبح خیر آبجی. از اینکه نورا مدتی طولانی او را در آغوش گرفت، قافل گیر و کمی معذب شد. وقتی آغوششان تمام شد، جو او را به دو نفر دیگری که در لابی ایستاده بودند، معرفی کرد. ایشون پریا هستند از مؤسسه تحقیقاتی گالیور که می دونی برای ریزی کنفرانس امروز را انجام دادن و این هم روری از مؤسسه سخنرانان مشهور. نورا گفت: سلام پریا، سلام روری، از دیدنتون خوشبختم. پریا در حالی که لبخند میزد گفت: ما هم همینطور خیلی خوشحالیم که اینجایی روری زد زیر خنده و گفت یه جوری حرف میزنی انگار اولین بار هم دیگر رو میبینیم نورا از حرف خود برگشت آره میدونم که قبلنم هم دیگر رو دیدیم روری داشتم شوخی میکردم تو که حس شوخ طبیعی منو میشناسی. مگه حس شوخ طبیعی داری؟ هر هر خندیدیم روری جو نگاهی به نورا انداخت لبخند زد و گفت خیلی خوب فضا رو ببینیم. نورا نمی توانست جلی لبخندش را بگیرد. برادرش اینجا بود. همان برادری که نورا دو سال ندیده بودش و از سالها قبل هم رابطه خوبی با هم دیگر نداشتند. حالا هم سالم و حال و خوشحال بود و به نظر می رسید واقعا نورا را دوست دارد. فضا؟ آره تالا رو میگم. همون همونجایی که سخنرانی می کنی؟ پریا با مهربانی اضافه کرد همه چیز آماده شده. روری همانطور که یک لیوان کاغذی پر از قهوه در دستش گفت خیلی هم بزرگه بنابراین نورا موافقت کرد و بعد او را به اتاق کنفرانس آبی رنگ بزرگی بردند که ای وسیع و حدودن هزار صندلی خالی داشت تگلیسیان سیاه پوشی به سمتش آمد و پرسید کدوم ترجیح میدین؟ روی ای یا روی گوشی یا دستی؟ چی؟ روی صحنه چه مدل میکروفونی میخواین؟ آها، برادر نورا به کمکش آمد روی گوشی، نورا گفت آره، روی گوشی برادرش گفت گفتم بعد از اوزایی که توی کاردیف به خاطر میکروفون پیش اومد اینطوری بهتره آره، دقیقا، عجب اوزایی بود پریا که میخواست چیزی از او بپرسد لبخند زد درست فهمیدم که محتوای چند رسانه ای ندارین، منظورم اسلاید و چیزای من برادرش و با کمی نگرانی به نورا نگاه میکردند مسلما انتظار داشتند جواب این سوال را بداند نورا گفت آره بعد حالت صورت برادرش شدید. دید نه ندارم آره ندارم هیچ چند چهرسانهی ندارم همه شان جوری به نورا نگاه کردند که انگار اشتباه میکرد اما نورا با لبخندی نگاه هایشان را discharge not